بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين واله وصحبه أجمعين ما بعد سی و درس رسول الله عليه الصلاة والسلام تالیف امام الترمذي رحمه الله واسکنا فسیح جناته سيسدو سيو خفتمين حديث امام الترمذي رحمه الله قياد حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت هنوزدار بابي تواضع رسول الله علیه الصلاة و السلام هستیم. که از جمله تواضع و فروتنی رسول الله علیه و السلام دعوت کسی را رد کرد حتی اگر برده بود و اگر با ناقابل ترین چیز هم دعوتش میکرد کسی علیه الصلاة و السلام میپذیرفت. اینجا در حدیث سریمان اسم الله مالک رضی الله عنه میگوید که رسول الله علیه الصلاة و السلام حدیثم صحیحی حدیثی که داریم. لو اهدی ایلیا کراع. لو اهدی ایلیا کراع کراع. فا و چه بوز گوسفند از جانب پایین لو احد ایليك و را قبلت قبول میکنم یعنی حالا چه دعوتش چه بخاطر عنوان هدیه بده به رسول عائسته و سلام ولو دعوت علیه لا اجبتك دعوت بشم یعنی به این چیزی که استخونه که گوشتوش نیست یعنی تواضع رسول الله علیه و صل و که میتونستی دل اصحاب یاران خودش را خوشحال میکرد و دل کسینا نمیرنجون و نمیشکست 338 من حديث امام الترمذي رحمه الله ميقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغلن ولا برذون حديث البخاري مسلم صحيح هيك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقابل دنس يعني ومات تباز درواته ومدك مريض بده بياده سوارهم نبوده يعني كبا اسبي بخاد بياد يا با بياد الا معمونن به اصل تاتاری یا ترکی گفته میشه و بعضیا گفتنم یه چیزی شبیه اسب بلکه یکم بزرگتر نه اون اسب جنگی اسبی که تو کار و زراعت اینا ازش استفاده میشده لیس براکی به بغلن و پیش من برای عیادتم یا برای زیارتم سواره نبود نه سواره قاطرش نه اولاغش و نه هم اینجا کلا اومده ولا برذون رسول الله صلی الله علیه و سلم پیاده اومدن پیشم سيسدو سيبو نهومين حديث أمام الترمذي رحمه الله ميديات حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبانا يحيى بن أبو الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سبماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي یوسف من عبدالله بن سلام یکی رسول الله صلی الله علیه و salam نام من را یوسف گذاشت زمانی رسول الله صلی الله علیه و salam یوسف نام من را یوسف گذاشت رسول الله علیه و salam و اقعدني في حجره ال بود و مرا بغل گرفت یا تو آغوش گرفت یا روی پاش گذاشت در اون هییتی که رسول الله علیه و سلم نشسته بود برا پیشش خوردن بچه بوده تازه به دنیا آمده. و مسح علی راسی یاد میکنه اینجا اون چیزی که شده و نامگذاری که شده معلومن چنین هم بود زمانی که ای به دنیا میومد از باب تبرک آب دهان رسول الله علیه و بچه رو میوردن نظر رسول الله علیه و و خورما رو بر می مکیدن و توی دهن بچه میکشیدن روی اون بالا زبون بچه روی لس هاش میکشیدن از اون خورما که تهنیک بهش گفته میشه تهنیک میکردن بچه رو و اینجا هم اومده دست به سر بچه هم میکشیدن برای بچه دعا میکردن حالا بحث دعا کردنش نمیگه بحث رو نمیگه ولی خب در روایت دیگه داریم نه در روایت یوسف ولی البته خب اینجا یاد میکنه این اون کاری که شده با یوسف و اردنش نزد رسول الله صلی الله علیه و برای همون بحث تبرک و بحث دعای رسول الله برای اون بچه و دست به اون یک لطفی در در حق اون بچه هست خصوصا زمانی که به دنیا میاد و این از تواضع رسول الله علیه الصلاه و السلام هم هست یعنی کسی بچه می میورد نزش علیه الصلاه و السلام رو روی پای خودش می مهر و مهربانی رسول الله صلی الله و یه چیز زبان زدی بود برای همه خصوصا نسبت به تعاملش با بچه تو کوچه می دید بازی می کرد باهاشون یا گاهی رو رسول الله علیه و برای بچه بیرون میورد یا گاهی دستاشو رو گوشاش می گذاشت همه نوعی تعامل با اون بچه با اون تواضع با اون بازی کردن خب اینا همه تواضع رسول الله صلی الله علیه و سلم با بچه هست خندیدن باهاشون بازی کردن باهاشون و اینجا یک نمونه اینجا امام ترمذی رحمه الله یاد میکنه 340مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید یات حدثنا حق بن منصور قال حدثنا ابو داوود الطيالسی قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاش عن أناس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء من حديث أن دوشتين اولا اینجا دوباره تکرار میکنه ما به ترمیدی رحمه الله از حدیث بن مالک رضی الله عنه حدیثم صحیحه که رسول الله علیه و سلم حجش را روی شطوری انجام دادن که زین اون شطور کهونه بوده و یک پارچه پرزدار روش بوده پارچه مثل گونی مانند که قیمتش هم میگه که چیزی و لهوش 4 هم بیش نبود یعنی قیمت کمی داشتن دکی داشت میگه زمانی که روی شطور خودشون سوار شدن خاصن از اونجا نیت احرامش رو شروع کنن باهاش حجش رو باهاش آغاز بکنن لبیک گفتنش رو آغاز بکنن روی شطورش بود و این ورد را گفتن لبیک به حجته لا سمعته ولا ریا من اینجا لبیک میگویم اجابت میکنم حرف الله جل و علا خاصه الله جل و علا به ادای این حج حجی که نه درش هست و نه خودنمایی سيساتش اللي يكون من حديث إمام الترمذي رحمه الله مقياه حدثنا أسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحوال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء قال ثابت فسمعت انسی فما صنع لي طعام اقدر على ان يصنع فيه دباء الا صنع حديث قبلا داشتیم اشاره بهش کردیم بحث کدو و دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و از این میوه در غذا خصوصا خورش آب و گوشت درست میشد چون میدونستن سرا رسول الله صلی الله علیه و کدو رو دوست داره براش توش کدو می ریختن و جایی دعوت بودن اینجا انس هم میگه روزی شخص خیاطي کارش خیاطي بود رسول الله صلی الله علیه و دعوت میکنه و جلوش ظرفی رو میذاره از اون که با خورش معمولا قاتی شده که نر میشه اون نون میگه که بعد اون خورش از کدو بود خورش کدو روش کدو بود میگه رسول الله صلی الله علیه و را دیدم که کدو رو بر داره اون کدوی که باش غذا درست میکنن و رسول الله هم صلی الله علیه و کدو را دوست داشتن ثابت میگه که راوی از انس اینجا رحمه الله شنیدم انس رضی الله عنه فما صنع لي اطعام اقدر على ان يصنع فيه دبا الا صنع غزای درست نشده الا که یعنی چون دوست داشته را برای من توش کدو میریختن چون می‌دونید منم دوست دارم کدورو به خاطر اینکه رسول الله صلی علیه و سلام دوست داشتن و در روایت دیگه هم میگه میگه فلم ازل و يعجبني ازل احب الدبا فلم ازل احب الدبا همچنان منم هم را دوست دارم به خاطر اینکه دیدم رسول الله صلی اللہ علیه و دوست دارن و اون رو میل می میکنن در واقع دیگر هم اومده که من هم چون دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست دارن جلوش گذاشتم چون میدونستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشش میاد از کدو خب اینم تواضعی دیگر از رسول الله علیه و سلم لازم نیست که خورش گوش باشه مرغ باشه حتی کدو رسول الله علیه و سلم ردش نمیکردن بلکه دوستش هم داشتن حسین زمانی که با نون قاطی میشده و با نون میل میکردن سيسات شلد دومين حديث نمام الترمذي رحمه الله مقيد حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرو قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخضب نفسه سوال شدن اومنین عاشه رضی اللہ ماذا كان یعمل رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی بیته؟ چه کاری میکردن رسول اللہ و وسلم در منزل؟ اون من عاشه میگوید کنه بشر من البشر مثل بقیه بنی آدم مثل بقیه بشر انسان ها یفلی ثوبه یفلی ثوبه حالا چه مراد پاکیزگیش باشه؟ شستنه که بعضی ها گفتن بعضی ها گفتن نه منظور این که دوختنه نگاه میکرد اگر جای پاره بود، میکرد اون لباسش پار پوره نباشه، کسیف نباشه. اهمیت بیداد به تمیزی و پاکی، شلخته نبود. همیشه پاک بود و پاکی رو دوست داشت. علیه الصلاه و السلام، و یحلب شاته، بوزم داشت، خودش شیر می‌گرفت از بزش. علیه السلام، نمی‌گفت که مثلا برید برام شیر بدوشید. خود رسول الله علیه الصلاه السلام شیر می‌دوشیدند. و یخدم و نفسه، الان انتهاش مهمه. اون کاری که برای خودش بود، خودش برای خودش انجام میداد. خودش خدمت خودش می‌کرد. نمی‌گفت که برام این کارو بکنید، اینو انجام بدید برام. کمال توازن رسول الله صلی الله علیه وسلم و عدم اتکابه تکیه کردن به این و اون و دستور دادن خصوصا در منزل بعضی جوها مردای هم نیاز دارم این قضیه رسول الله صلی الله علیه و سب در حجت الوداع هم این مورد یادواری کردن هشدار دادن تقو الله فی النساء فانهن عون بین ایدیکم تقوای الله را در زنا داشته باشید. زنا هم پیش شما، زن اسیره. با زن مثل برده تعامل نکنید. اکرامش بکنید. رسول الله علیه الصلا دوست نداشت، دستور بده. دوست نداشت کاری که از پس خودش برمیاد از کسی بخواه من نمونش هم زیاده. تن رسول الله صلی الله علیه و سلم صبح گرسنه بود میومد نزد اون عایشه. تیزی داریم که بخوریم اون عایشه میگفت نه. رسول الله صلی الله پس من روزم پس غذا میپختن. بیکار نبودن تو خونه. خدمت شوهر کردن و شوهرداری یک وظیفه است. شوهرداری یک وظیفه است. رسول الله علیه الصلاه و السلام می فرماید: كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیت اول مرد راعیه، وظیفه داره در مقابل زن همسرش. والمره راعیه فی بیت زوجها. زن هم راعیه در خونه شوهرش یعنی مسئولیت داره، مسئول خونه هست نه اینکه زن بیکار بشینه و هیچ کاری انجام نده. زن مسئول در خونه شوهر. زنهای رسول, رسول الله علیه خدمت و آله می و همچنانم 1400 ساله که در کتاب فقیه هم بحثش میشه که حق مرد بر زن از حقوقی که مرد داره به گردن زن اینکه که زن خدمتش بکنه در منزل یعنی کار اون مرد را سبب بکنه در مقابل سرپرستی که مرد داره بیرون زحمت میکشه میاد تخونه چلوهشتومین باب، باب و ماجعه فی خلق رسول الله صلی عليه علیه وسلم اون چیزی که در مورد اخلاق رسول الله علیه ساته و سلم یاد شده در احادیث رسول الله صلی عليه علیه وسلم اخلاق، زمانی که گفته میشه اخلاق اخلاق یه چیزی دیرونی داریم، یک چیزی بیرونی داریم اخلاقمون، یه چیزی برمیگرده به ایمان و اعتقاد، به مرام صبر در مقابل مثلا ظلمی در مقابل مثلا بیادبی قسمتش یه قسمتش برمیگرده به صبر یه قسمتش برمیگرده به حیا یه قسمتش برمیگرده به بردباری و حیل حسن در مقابل همسر در مقابل بچه یه قسمتش برمیگرده به کرم اینها برمیگرده به ایمان ما یعنی اون ایمان ما سبب میشه که ما دست به بخشش داشته باشیم، اکرام بکنیم، حالا با اخلاقمون، با رفتارمون، با خوبیمون، با حرف نیکمون. اینا همه برگرفته شده از ایمانه. شخصی که ایمان نداره، همون چیزی که در سوره معون الله بهش اشاره میکنه، رایتللی یکذب بالدین، فذلک الذی يدع الیتیم. کسی که ایمان به روز آخرت نداره، خب دست یتیم نمیگیره و نه نم انفاقی میکنه چون ایمان به روز آخرت نداره ولی مؤمن نه ایمانش سبب میشه اکرام بکنه دیگران بخشش داشته باشه و یه قسمتش هم برمیگرده به آداب ظاهری در تعامل مثل خوش لبخند زدن حرف نیک زدن درست حرف زدن اینا جز اخلاق ظاهریونه بعض از علما مثل ابن بیزید قیروانی قبلا مقدمه کتاب رو ما تدریس کردیم ابن بیزید قیروانی بالاخره معروف از علمای تونس از علمای مشهور و علمای فرهیخته است خصوصا در باب فقه و عقیده ابن بیزید زید قیروانی میگه حدیث اصول ادب و اخلاقن 4 حدیث یاد می کنه من این حدیثو فقط گزارا زشتت میشه اولین که در صحیحین حدیث ابوهریره رضي الله عنه وغفر الله له و له لأمه میگه رسول الله صلی الله علیه من کان یؤمن بالله و اليوم الاخر فلیقل خيرا او لیصمت من کان یؤمن بالله و اليوم الاخر ایمان اگر ایمان داری به الله و روز آخرت حرفت خوب باشه و یا این که ساکت بشی حرف نزنی بدون فکر حرف نزن بدون تعمل تفکر چیزی به زبان نیار این اولین توصیه رسول الله علیه و اللہ در این حدیث بحث اخلاق رفتاره مردم را با زبانت آزار نده فلیا فالیاقل خیر خیری بگو حرفی خوبی بزن مردون دلش خوش بشه یا اینکه حرف نزن که با اون حرفت اگر زدی به زبان وردی کسی ازت برنج ناراحت بشه و به تبع طرف بر بخوره و گناهی برات نوشته بشه ظلم کردی در حقش ظلم ظلمات يوم القيامه ظلم تاریکی یا روز قیامت پرونده اعمالت سنگین میشه دل کسی رو رنجوندی کردی همون حرف تو در مقابلش مسئولیت کلمه گفتی بیشترین چیزی که انسان رو وارد جهاننم میکنه اون چیزی که زبان انسان بهش نتو میکنن او. تكلت کام مکیام معاد زبانشو میگیره رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما میگه زبان رو یه رسول آدم و جهاننم میکنه میگه بله تكلت کام مکیام معاد او یکب ناس علی مناخی ریم او علی وجودم ایله حساید و علی سناتیم اینه زبانه فکر کن قبل از حرف زدن این حرف اینجا بزنم و نزنم این شخص ناراحت میشه ناراحت نمیشه این حرف اینجا جو بزنم جاشی یا جاش نیست این اولین حدیثی که اشاره بهش میکنه امام ابن زید غیروانی دومین حدیث فرمودید رسول الله صلی الله علیه و سلم ان من حسن اسلام المرء ترک ما لا يعنيه حسن اسلام المرء ترک مالا لا يعنيه حسن اسلام تو مسلمان موجودی این اسلام تو را باید بادار بکنه بخوبی خوبی از حسن اسلامت از درستی اسلامت صحیبودن بودن اسلامت چیه اینه که چیزی که به تو ربط نداره دخالت نکنی توش چیزی که به تو ربط نداره چیزی که تو مسئولش نیستی نشی. نباشی. فضول نباشی. سرک بکشی تو زندگی این تو زندگی اون تجسس بکنی، تحسس بکنی. حالا چنانچه در احادیث داریم، رسول الله صلی الله علیه و هم تاکید میکنه روی این قضیه. لا تجسس و لا تحسس. و. تجسس نکن، سرک نکش. این فزولیئه. حالا چه با گفتن، چه با نگاه کردن، چه خبر گرفتن از این و اون، چند تا بچه داره، چند تا زن داره، درآمدش چیه؟ از کجاست؟ خرجش زندگی چطور داره میچرخونه؟ فزولیئه. به تو ربطی نداره تو مسئول زندگی کسی نیستی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و مسلمون کسی که مردم در امان باشه از زبانش از حسادتش از زبان و از دستش بسار مردم در امان باشن حسود زندگی مردمی تو چه کار داری به زندگی مردم میخوای صدقه بشون بدی میخوای زکات بهشون بدی چند تا بچه داره که میخوای زکات بهشون بدی دنبالی که خیری بهشون داشته باشی یا اینکه نه فزولی مردم رو در امان نذاشتی تو ظالمی تو روز قیامت باید جلو الله جل و علا بیستی و تابان این حرفت رو باید پس بدی جلو الله جل و علا که سرکشی رسول الله صلی الله علیه و آله گفت لا تجسس و تجسس کردی لا تحسس و تحسس کردی تو مسئول مال مردم نیستی از کجا آوردن از کجا نایوردن چندتا بچه چندتا همسر چند تا خواهر چند تا برادر و الی آخر از کجا آورد از کجا به کجا برد از کی گرفت از کی نگرفت این به ما ربط نداره این سرکشیدن در زندگی مردم فزولی فزولی حرام فوزلی جور معمولا این فوزلی بعد دخالت کردن سرک کشیدن از حسادت انسان برمیاد از حسادته ولا تحسدوا اونجوری که رسول اعظم گفتن لا تجسس ولا تحسس و گفت ولا تحسدوا و کونوا تحسد عباد الله اخوانا ولا تحاسدوا حسادت نکنید برادر هم دیگه باشید این برادری رو از بین میبره وقتی که شخص بدونه داره این شخص تجسس میکنه تو زندگیش دیگه خود نمیتونه باهاش بشینه خب هی فوزلی میکنه کی میری سفر کی میای با کی سلام علیک داری انگار که داره آمار میگیره امور نگیر از کسی به کجا رفت کی رفت کی میاد از اسلام ما حس اسلام ما اون چیزی که به ما ربط نداره درش دخالت نکنیم خب الان این حدیث بعضی ها اشتباه میفهم بد میفهمن حسین رب داره به حدیث قبلی هم. شخصی میبینیم تو ماشی صدا موسیقیش بلند کرده یا تو خونه برادره یا خواهره یا غیره بهش میگی یا خواهرت یا دخترته حجابت مواظب باش این درست نیست حرامه میگه رسول الله صلی نگفته کاری نداره باش به کسی از اساساً مشخص این نیست که مگر کسی کاری به کسی نداشته باشه هر کسی به دینش به دینش،, به دینش هر کسی تو گروه خودش میخوابه این دیکه کلام ها زیاد به کار برده میشه ایسا به دینش مسا هر کسی تو گروه خودش میخوابه نه، این مسائل رو با هم دیگه قاطی نکنی اینجا قول خیره اینجا امر معروف نه از کره حتی اگر طرفم هم برنجه حتى الاعتراف برنج الله جل وعلا قرانك ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير امه اخرى ذات للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر خوبي ان امه دارينه امر معروف نهي عن المنكر ولي خوب خب له قولا لينا بونارمي بلغت بون اخلاقه بدت تند سبب شدك كطرف رنجيده بشه تو در مقابلون ان حرف درس حرف بزن قل معروف را درس ابلاغ کن و اون منکر را به درستی انکار کن نبا توندی نصیحت خودش تلخه چنانچه البانی رحمه الله میگه نصیحت خودش تلخه دیگه با رفتارت تلخترش نکن که طرف از تو زده بشه از تو برنجه اجازه نداریم در مقابل منکری که ما میبینیم ساکت بشیم وظیفمون انکار منکره اولیاسمود در جایی که ما خیر و شرش رو نمیدونیم در امور دنیا اما در عمر الدين وزيفة منه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرت أنا ومن اتبعني بقول الله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كراهما دعبت بسوي الله جل وعلا أمر مالفا عزمك بو علم بصيرت منو بيروانا إن وزيفة ما هست سبومين حديث حديث البخاري رضي الله عنه وغفر الله له والأمي حديث صحيح بخارية شخصي عمر نازل رسول الله عليه وسلم توسيعي خاصاً قفت أنا وصني يا رسول الله. قال لا تغضب. فردد مرارا هي تكرار كذا. اوصني صني أو قال لا تغضب. بس يا تامكن نصيحة تامكن. قفكن أسباني نشوء أسباني نشوء أسباني نشوء تكرار كذا. بعد ده سبعة وخمسة ناربكني. باه. أنفعالات داريني من خونك الجوش ميات. بعد ده سبعة وخمسة باش ناربكني. بعد خدمو النجاه دارين. فرموش ناكني من فرمودي الله جل وعلا. بندگان أيكش. والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والكاظمين الغيض. بله انسان حسوانی میشه خون انسان به جوش میاد ولی که توصیه رسول الله عز و به چیه اینه که ما خشم و فرو ببریم تا جایی که میتونیم خشم رو فرو ببریم و خودمو کنترل کنیم آخرین حدیثی که به اشاره میکنیم به زید خیروانی رحم الله حدیث انس رضی الله عنه هست که میگات رسول الله صلی الله لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما يحب لنفسه اساس شما ایمان نداره اینکه دوست داشته باشه به برادرش اون چیزی که برای خودش دوست داره چیزی که برای خودت دوست داری برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند چیزی که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند دوست داری کسی آزارت بده؟ نه دوست داری همسایت اذیتت بکنه نه خب همسایت هم اذیت نکن؟ آزارش نده. دوستداری کسی حسادت از زندگیت بکنه؟ نه حسادت نکن دوست داری کسی مال تو رو بخوره؟ نه بس مال مردم نخور نخوره دوست داری کسی با دختارت با خواهره چشون باید نگاه بکنه؟ نه؟ بس همینطور تو خواهر مردم، دختر مردم تو ایمانت کامل نمیشه. ایمانت درست نیست، صحیح نیست. ایمانت کامل نشده، به کمالش نرسیده مگر و نمیرسه مگر اینکه اون چیزی که برای خودت دوست داری برای دیگرانم بپسندی. و الا تو باید بیای اون ایمان تو، درش تجدید نظر بکنی. چی ایمانیه؟ چی ایمانی که تو بدی دیگران میخوای؟ همه میخوای خوبی بد کنن ولی خود خوبی نکنی. دوست داری بچه‌ها احترامت بذارن ولی خود احترام پدر مادرت نمیذاری؟ نمیشه که همه چیز برای خودت دوست داری، برای دیگران دوست نداری نمیشه. این چهارتا حدیث میگه مامان مبزید قریوانی مدار اخلاقیاتی که رسول الله صلی الله و سلم بهش تشویق کردن و اون چیزی هست که الله جللا و در قرآن به ما توصیه کردن و هیچ کدوم از این توصیه ها که شما الان شنیدید نبوده که رسول الله صلی الله و سلام در زندگیش نباشه. یعنی تمامی اینها رسول الله صلی و سلم بهش عمل کردن و شما جای نمی‌بینید از رسول الله صلی الله و سلم نسبت به کسی بی احترامی بکنه، بی ادبی بکنه، تنخویی بکنه، حسادت کسی داشته باشه نسبت به زندگی کسی. حالا میاد اگرم غیبت بوده، جوی خاصی بوده، برای چیز خاصی بوده. رسول الله صلی الله علیه و آله اهل غیبت نبود. اون چیزی که الله جل و علا در قرآنش از رسول الله صلی الله علیه و آله خاصه بود، همون تکمون عایشه میگه کرخلوخ القران، اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله قرآن بود. این هر چیزی که الله جل و علا تو قرآن ازش خاصه بود، عمل می‌کرد. گفته بود غیبت نکون، ولا یغتب بعضکم بعضا. رسول اهل غیبت نبود، الا که ضرورت ایجاب بکنه، مثل خاطم بن قیص که میاد نزد رسول الله علیه و سلام نصیحتی میخواد در مورد خواستگار هایی که داره کلا خواهد اومدش اشاره رو بهش خواهیم کرد. که اونجا ضرورت ایجاب میکنه که رسول الله علیه و سلام بگه هر کدوم از این ها چه مزیتی داره و نداره. سی مین و, و حدیث. أمام الترمذي رحمه الله بيديات حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرأ قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا وحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث زيف حديث زيف زيد من ثابت كسانيم النزش بعد بيجان كبش أحاديثك شديدة عن <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ناقكم بهم بغو بازغو علاتن گفتم حدیث ضعیفه ولی خب چیزی که الا معناش هست این حدیث ولا چیزی خاصی هم توش نیست یعنی که اشاره بشه به نکته ضعف در متنش میگه خوب اینجا زید بن ثابت میگه به شما می خواهم گفت من همسایه‌اش بودم همسایه رسول الله علیه و تسلم فکان اذا نزل عليه الوحی و بعث الي فكتبت له غیر از همسایگی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله می با نوشتن وحی یعنی اینو خدمتی یک کاری برای اساساً انجام میداد نوشتن وحی غیر از اون همسایگی و حق همسایگی که ادا میکرد غیر خونم هم نزدیک بود کن تجاره خونم نزدیکش بود و میرفتم نزد رسول الله صلی الله علیه و آله برای نوشتن وحی یعنی مراودتم تعاملم با رسول الله و آله زیاد بود رفت و اومدم به خاطر نوشتن وحی به غیر از اون همسایگی و قلنا اذا ذکرنا الدنيا ذکرها معنا اگر بحث دنیا میشد علای الاش شیخ عبدالرزاق عباد در شرح این قضیه میگه که ما رو یادآور میشد از اینکه دنبال دنیا نباشیم دنیا پست دنیا نزد الله جل بال بالپشیش ارزش نداره حالا این اینجوری تفسیرش میکنه ولی خب ظاهرش اینه و کنا اذا دنیا الدنيا ذکرها معنا ظاهرش اینه که اگه حرف از دنیا میزدیم رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر نصیحتی بودم به ما ارائه میداد یعنی ما میگفت یعنی اگه حرفی داشتم میگفت خصوص خصوصا زمانی که شخصی بالاخره نصیحتی میخواد در اون کاری که میخواد انجام بده مشورت بخواد بگیر از رسول الله عز و جل اینطوری نبود که شور نده از وقت خودش به اصحابش نده و اذا ذکرنا الاخره ذکرها معنا ازباب تشویق، یعنی اگر جای موعزه بود، بحث آخرت بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را یاداور میشد به امر آخرت و ایده ذکرنا الطعام، ذکره هون معنی اگر بحث غذا میشد، بحث غذا میکرد، الان اینجا شیخ در عزیز حفظه الله میگه که بحث آداب غذا خوردن با ما یاداوری میکرد، الحمد لله گفتن، بسم الله گفتن و الان این که در سیره خود رسول الله صلی الله علیه و وسلم ها از میگه یعنی که از جلوت بخور با بسم الله بخور با دست راست بخور این در زندگی رسول الله علیه و وسلم با کوچکش بود بزرگش بود و کل هذا احادثكم عن رسول الله صلی الله علیه و وسلم همه اینها تعامل هایی بود که من با رسول الله علیه و وسلم داشتم و می دیدم در مجالس هم با رسول الله علیه و وسلم سيس على وشاء رومين حديث حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير قال عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر قال أبو بكر رضي الله عنه فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر فقال عمر رضي الله عنه فقلت يا رسول الله أنا خير وعثمان قال عثمان رضي الله عنه فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوديدت أني لم أكن سألته حديث حسنة البنية تحسيني شميكونا رحمه الله عمر بن العاص قال رسول الله عليه السلام زمانك بقوم من شخص بهافر زدان خب رومي كالبترف النقاي شميكال ای نبود این نبود که مثلاً چشم پایین بندازه و نگاش نکنه یا مثلاً بغل نگاش بکنه نه اگر با کسی حرف میزد روبروش میزاد حرفشو گوش میداد رسول الله صلی الله علیه و سلم یقین با واجی و حدیثی علی اشر القوم حتى آن کسی که با داخل آورد خلق خوی خوبی بد بود اشر القوم یا هم به دلک با آن خوبی ولابخاندش تعمول نیکش دلش رو بدست میورت کنان الله جل و جلال میگه در قرآن ولو کنت فضن غریض القلب من حاول اگر بد اخلاق بودی، تنخو، تنمزاج بودی، لن فضو من حولک یعنی از تو فرار میکردن همه، با بدترید مردم بهترین رفتارها داشت، با بدترین بهترین ها، بهترین رفتارها و خوش و تعاملها رو داشت رسول الله عليه الصلاة والسلام فکانه یقبله به وجهی و حدیثی علیه حتی ظننتو انی خیر القوم نیگه با من حرف میزد چنان رو گروه منیشه هست چنان با من حرف میزد که فکر میکردم دیگه بهتر از من کسی نیست یعنی خودم بهترین ها میدونستم از اصحاب یاران رسول اللہ علیہ السلام و سب یعنی این قدر رسول الله اللہ علیہ السلام خوشبر خورد بود خب سال پرسیدم گفتم یا رسول الله. حالا من بهترم یا اوبک رضی اللہ عنوان قال ابو بكر وسلا مرخص بكر فقلت يا رسول الله أنا خير من عمر والله ما من بهتر عمر مين يعني حتى الصحابة مين حتى عبد الله بن عمر ميجب شنو شو درسه البخاري ميجب ميقول فتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم مزند بود كا كسي بهتر زي أبو بكر من زي رسول عيسى توا سلام نيش ازلازه إيمان ازلازه تقوى رسول عيسى توا سام كذي نيا من ميجب بعد ميقول بعد از أبو بكر السديق عمر رضي الله عنه رضي الله عنه مجمعين فبين مقرر بود يعني هذا الصحابي رسوله عليه صلواته والسلام رضوان الله عليه مجمعين فباد بورسيدنا بك يا الله من بهتلم يا عمر بن خطاب رضي الله عنه كفك يا عمر كفتا من بهتلم يا عثمان كفك يا عثمان رضي الله عنه مجمعين آخرش هم که فعلا مسالتو رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدم فالصدقانی سوالو پرسیدم رسول الله علیه و آله صادقانه جوابم داد یعنی بدون تعارف تعارف هم با من نداشت حرف حقه او بک بهتر از تو هست راست درست جوابم داد فلودت انی لم اکون سألتو یعنی ای کاش که من این سوالا رو پرسیم یعنی الان تمنام اینه که این سوالا رو نمیپرسید ببین اون جا یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله اینجینی هی زیر سوال نمی بردم، هی ازش سوال نمی حالا من بهترم، او بگ بهتره و ایل آخر خلال هرچند که جاشق حبدالعزاق میگه، حفظه الله میگه فلوودت تو انی لم سال تو میگه بخاطر اینه که این پش که داره، برای اینه که میخاست روی اون حسن ظنش بر رسول الله صلی اللہ وسلم باقی بمونه نسبت به خودش یعنی نه صحابه تواضع داشتن و بهشون امر نمیخورد هیچ حسادتی هم نداشتن که چرا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازیکتر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چرا بشادی هستش داره اونها دیگه مثل ما نبودن که خودخوری بکنیم الا این چرا با ایش میگرده این چرا باهاش هسته چرا این سوار ماشین شده چرا با اون رفته با من نرفته این رفتار زنونه قبلا نداشتن صحابه رسول الله صلی الله علیه و میدونن میدونسان جانشون رو فدای رسول الله صلی الله سلام کرده میدوننن که ابوبکر صدیق کی چگونه فدایی بوده جان بر بوده به رسول علیه صدیق و کل مالشو در اختیار رسول الله علیه صدیق سلام قرار داده دخترشو به رسول علی علیه صدیق و داده و همه هم میدونستن و کسی هم نبود که بخواد بیاد زیر آبروی ابوبکر صدیق رو نزد رسول الله صلی علیه صدیق و وسلم بزنه که من بیشتر دوست دارم رسول الله الله علیه صدیق و وسلم این نبودن و چشمشون این نبود که آقا چرا رسول الله علیه و سنت بیشتر با ابوبکر صدیق الله جل و علا اباک سدیق را عزیز گرد نه رسول الله علیه و سنت و هم رضوان الله علیهم اجمعین هیچ وقت اعتراض داشتن به این قضیه زمانی که رسول الله علیه و سنت با زمانی که فوت شدن فوراً اومدن همه جمع شدن به بیعت با ابوبکر صدیق و هیچ اعتراضی هم روی قضیه نداشتن چون فضلش و مكانتش و جایگاهش میدونسن اون حسادت عجم را رها بکنید که میگن که اونجا اجماع نبوده اتفاق نبوده بر خلافت ابوبکر صدیق بینه اون عربایی که زیر دست رسول الله صلی الله علیه و تربیت شدن کرم بود بخشش بود خیرخواهی بود اونها اهل حسادت و دنیا دوستی و زیر آبزنی و و نمی‌دونم توزی و بغض اینا نبودن اینا زیر دست رسول الله صلی الله علیه و تربیت شدن نه که من بگم حالا اینجا چون عربن این فضیلت رو دارن الله جل و علا خاصه میانه اینها پیغمبر علیه و و سلم مبعوث بشه چون اونها رو داشتن ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیاقتشو داشت از کرمش از بخششش از خوبیش از فدا کردن جان و مالش و زندگیش برای رسول الله و, و همه هم میدونستن و این بعد از حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم همه قشنگ واضح دیدن دیگه همه اومدن جمع شدن اتفاق کردن بر او باقی صدیق این که خلیفه رسول الله علیه الصلاه و السلام امیر مومنینه هیچ کسی حتی علی بن نبی طالب دوبار میاد بیعد میده با او باقی صدیق رضی الله عنه بقاطل که حرف مردم رو را عجام که که میومدن یا بعض از اعراب بادی نشیدی که میومدن میخواستن فتنه بندازن که حالا چرا او باقی صدیق باشه رضی الله عنه چرا دمادش نواشه بن ابی طالب چرا نباشه؟ چرا فلانی نباشه؟ میخواستن دو به همزنی بکنن؟ این خسلت, خسلت های جاهلیت ها از, از کرممون اینی که نعمت الله را در حق خودمون بهترین بدونیم. اون چیزی که الله به ما داده قانع باشیم برش. الله این را در این جایگاه گذاشته، در این مرتبه گذاشته، در این پست و مقام گذاشته. تو خواه تو اولات هر تو اعتراض زری به تقدیر الله جل و علاه الله چه به نسبت جامعه هم چه به نسبت مال سر به چه فلانی لی فلاموجیس وار مان نداره الله بهش داده الله رزش کرده سیصد و شلوپانچمین حدیث امام مترجمی رحمت الله میگی حدثنا قتیب ابن سعید قال حدثنا جعفر ابن سلیمان الضبعی عن ثابت عن انس ابن مالک رضی الله عنه قال خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر سنین فما قال لي افن قب وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزنا ولا حريرا ولا شيئا كان ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم أنا سلمان وعليك رضي الله عنه ومجيئات دهش الخدمات رسول الله صلى الله عليه وسلم كأدم و چه بود مادرش آورده بود نزد رسول الله صلی علیه و سنت برای که خدمت رسول الله علیه و سنت بکنه حالا میخواد بگه یعنی که بیشترین کسی که وارش سر و کار داشت من بودم یعنی همیشه در خدمتش بودم برم بیام چی میخواد چی نمیخواد میگه خب تو این همه سال تو این ده سال که کنارش بودم به عنوان یک بچه فما قال لی اوف قط هیچوقت به من اوف نگفت اوف اصلا که میگه وقتی که ناراحت بشه اوف بس حروف زجره دیگه اوف بازم تو این کارو کردی بازم اینو انداختی بازم نرفتی بازم اومدی خسته بشه مثل از بچه‌اش اوف بازم اینا اومدن میخواد بخوابه میخواد بلند بشه میگه گاهی از رسول الله صلی الله علیه و آله عف نشنیدم گاهی عف نشنیدم که را مثلا با این کلمه زجر بده بخواد تنبیه هم بکنه بخواد به ابرو بیاره رو به من ابراز بکنه که از اینکه چرا من اومدم چرا فلان کارو کردم یا نکردم ولا خودش هم توضیح میده دردم حدیث و ما قال لشیء صنعت لما صنعته مثلا کاری که میکردم بهم نمیگو چرا فلان کارو کردی چرا رفتی مثلا با فلانی بیرون یا فلان کارو چرا مثلا اینطوری انجام دادی والا لشه اینتراکت تو چیزی متراکته را انجام نمیدادم بهم نمیگو که چرا انجام ندادی یعنی سرزنش هم نمیکرد نکوهش هم نمیکرد تو سری بهم نمیزد خب از یه طرف خود رسول الله علیه السلام تعاملش تو سری نمیزد همیشه تشویق میکرد طبیعت ها. یکی از اصول تربیت که روانشناس ها امروزه میگن برای یکی بچه خورد نشه بچه شکسته نشه برای بچه با تا جای که میتونیم از ادوات تشویق استفاده بکنید این کارو میکردی بهتر بود نه اینکه چرا این کارو نکردی چرا فلان کارو کردی زمانی که تو سری بهش این کار بهش میکنی خب بچه دیگه دلش از اون کار زده میشه دلش شکسته میشه نمیخواد دیگه اون کارو دوباره انجام بده که دیگه این تو سری دوباره نخوره بچه رو تو سری نزن اگر این کارو بکنی بهتره این کار بکن بهتره این کار نکنی بهتره هرچند که اینجا یک مسئله هست شیخ الله به می‌کنه میگه که اینجا خود اخلاق هست تربیت شده است شخصی است که می‌دونه مقام و منزلت رسول الله علیه و سلم و اون جایگاه رو حفظ کرده و کوتاهی نکرده در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر همین رسول الله علیه و صلی الله علیه نه عف گفته نه گفته چرا کردی و چرا نکردی فلان کارو مدحی از انس هم همین جا هلته اون چیزی که ما برداشت میکنیم یعنی در اون چیزی که از رسول الله علیه و سلم در نقد میکنه و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم من احسن الناس خلقا متور کلی در رفتار و تعامل و گفتارش رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش رفتارترین خوش اخلاق ترین مردم بود ولا مسست خزن، ولا حريرًا ولا شيئًا ولا شيء ابریشامي دست نگرفتم ولا شيئًا هیچ چیزی یعنی كان الين من كف رسول الله عليه الصلاه والسلام هیچ چیزی نرم‌تر از کف دست رسول الله عليه الصلاه والسلام چیزی دست نگرفته بودم دستش انگار ابریشم از ابریشم نرم‌تر بود یعنی حتى یعنی اون طوری که وس می از کف دستش با وجودی که رسول الله عليه الصلاه والسلام دستاش دروش بود انگشتاش دروش بود مفاصل بدنش دروش بود برای کی کف دست رسول الله صلی الله علیه و سلام نار بود مسكن قط ولا عطرا كان اطيب من عرق النبي صلی الله عليه وسلم هیچ بوی عطری خوشبوتر از عرق, عرق, میکار عرق رسول الله صلی الله علیه و به مشام نخورده بود تا جایی که صحابه بنوان عط و بنوان تبرک نگاه می‌کردن جایی که رسول الله علیه و سلام عرق میکه عرقشو جمع بکنند تو شیشه حتی اموات المؤمنین این کارو میکردن عرق رسول الله صلی الله علیه و سلام برای خودشون نگاه می‌داشتن به عطر استفاده میکردن و به تبرک من رسول الله علیه و سلام این چیزی از کبک و صدیق هم زمانی که رسول الله و صدیق در وفاتش میبوستن بعد که فوت شده بودن میگن که طب تا حی نومه ایتا خوشبو بودی خوشعت بودی هم دورانی که زنده بودی زمانی که زنده بودی هم اینجا که مردی همیشه رسول الله صدیق اون بوی خوش بر تنش بود بر سر جانش بود از اون عراقش از اون بوی خود خوش رسول الله علیه و السلام سيسادو شهيلو الشيشومين حديث تمام الترمذي رحمه الله مجيات حدثنا قتيب بن سعيد وأحمد بن عبده هو الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حمد بن زيد عن سلام العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدعو هذه الصفرة حديث زيفة هناك سلامك هاس سلام على به زيفة وطنع من حديث زيفه أنا سبن مالك رضي العام يكير رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص يمات أصر عتر زعفروني زرد رنگ بود رو پیراهنش بود نه رنگش قشنگه و نه هم حالا بوش که زنونه هست سفر عطری هست بوی زعفران توشه و مونا زنان استفاده میکنم چون بوش فاهها نداره بوش پخش نمیشه بوش فقط روی لباس می مونه و رنگ داره برای خودش زنان به لباسشون می زدن خاطر اینکه اون لباسشون هم رنگ زردی به خودش میگرده نارنجی و هم اینکه حالا اون بو روی اون پیراهن باقیبونه زمانی که میگه که بلند میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست هم کسی رو برنجونه نمیخواد مثلا یک کسی را دلش بشکنه و تو جمعی بخواد بیاد نصیحتش بکنه بلند که شد رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابش فرمودن اگر میشد یکی از شما یعنی بهش بگه که این عطر رو دیگه استفاده نکنه این عطری که زرد نارنجیه دیگه استفاده نکنه حالا یک مطلبی هست خصوصا در بحث نس نصیحت فزیحت نیست رسولاهی نیست اینو باید ما بکنیم نصیحت تو جمع کردن رسول الله صلی اللہ منعش کردن الا اینکه شخص ما بدونیم الا رنجیده نمیشه الا مسئله فرق میکنه از باب شوخی مزاح باش وارد بشید ولی انکار منکر تو جمع کردن به امروز خیت کردن طرف رسواه کردنش این کار درستی نیست رسول الله عز و جل میفرماین اذا اردت نصیحت لذی سلطان فلا علانیه این درسته که در شعن سلطان حاکمه اگر نصیحت حاکمی رو میخوای بکنی علانی نکن یعنی جلو جمعی این کار نکنوش بلکه دستشو بگیر یه گوشه نصیحتش بکن حالا این نه تنها با حاکما با پدرم همینطوره با دوست رفیقم همینطوره کسی رو خاصی نصیحت بکنی یه گوشه نصیحتش بکن یک گوشه نصیحتش بکن فخود بیادت اون جوی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دستشو بگیر یک گوشه دستشو بگیر یه, یه گوشه نه تو جنب که تبدیل بشه به رسوایی به زشتی اون شخص تو جنب و شخص احساس بکنه تو خودت حالا من تحقیر شدهم، حالا من تو سری خوردم حالا من زشت شدم دیگه نمیام دیگه فلانه اینو باید درش دقت بکنم حالا یک مطلب البته کار بین بی حدیث نداری ملاک خب خب این سخن رسول الله صلی الله علیه و دلالت بر این قضیه میده که نصیحت تبدیل به فضیحت رو سوی نشه نصیحت نصف باشه خیرخواهی باشه خیر طرف رو میخای یه گوشه‌ای باش اون تو بزن با درمی خوبی مطلب دوم بحث لباس اینجا خب این شخص لباسی که پوشیده رنگ نارنجی به خودش گرفته از اون اتیک که زده مالیده به لباسش حکم رنگ نارنجی پوشیدن برای مرد چیه رنگ نارنجی قبل ما داشتیم در حدیث یاد شد، حالا فقط از باب تکرار میگم چون اینجا هم در این حدیث اومده برای مرد حرامه، برای مرد رنگ پرتقالی، رنگ زعفرانی، زعفران که دیدید، سرخ نیست، قرمز نیست، رنگش از سرخی کمتر مایل به زرد، یعنی وسط زرد با قرمز نارنجی، پرتقال همه دیدید، نارنجی همه دیدید، اون رنگی که برای مرد حرامه، اون رنگی که برای مرد حرامه. روزی عبدالله بن عمر بن عاص میگه، نیکه لباس نارنجی پوشیده. قراء عليه النبي صلی الله عليه وسلم ثوبين مع اصفرين دوته لباس پوشیدم اون جامعه که برتر و اون لنگه که پایین پوشیده بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم ناراحت میشه بعد عبدالله بن عمرو العاص میگه میگه امک امرتک بهانا مادرت بهت گفتی که اینو بپوشی ناراحت شده دستش چون لباس لباس زنونه است برای زن مشکل نیست نارنجی بپوشه ولی برای مرد درست نیست بخاطر همین میاد خودش نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله اخسل هو بشورة رمش رنقش مثلا كمتر بشي رنقش بره؟ قال بل احرقهما آتشیش بده بعد از ذراواته خب اینا نزیک بودن یعنی عبدالله بن عمرو بن عاص که دیگه خیلی نزدیک رسول الله عائسه و سلام بود این رو چش گذارشه حرف رسول الله عائسه خوشحال شده که رسول الله عائسه قابلش دونسه نصیحتش داره میکنه کاتب وحی بود کاتب قرآن بود کاتب هم سنت بود هم وحی هم قرآن هر دو تا رو مینوش هم قران رو مینوش هم سنتو مینوش یعنی اینقدر حریص بود بر رسول الله صلی الله علیه و آله و رفتارش بر اصلا برام هم اینا هممون اینطوری باشیم نصیحت یا اینکه که طرف حرف خوبی بهت میزنه رو سر چش بذاری خیر خواهه تو داره نسیحتت میکنه یا اینکه اون کاری که تو داره انجام میدی کار خیر و خوبی نیست که با دست بکشی ازش چرا ناراحتی میگه الله جل و علا این کار نمیکنه از اون امتایی که پیغمبران مراشون فرستاده شدن از صالح از هود از شعب چی میگفتن به قامشون ولیکن لا تحبون الناصحین ولیکن لا تحبون الناصحین ناصحين رو دوست ندارید اون کسی که نصحتت میکنه یعنی این صفت صفت کفاره صفت مشرکینه صفت مؤمن نیست شو اساس من نصیحت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید دین النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه دین نصیحت نرهدنا شو اوقات کوچکتری اومده به دین نصیحتی کرده یا اینکه گفتم حرفش درسته یا اینکه حرفش اشتباه اگر حرفش اشتباه بود تو نصیحتش بگو تو نصیحتش بگو حرف بدی زده، تو نصیحتش بکنونو خیر خواهش باش الله